بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا خب بسم الله الرحمن الرحیم و یقولونه و یقولون متى هاذل بعد ان كنتم صادقین خب عنوان داشتیش که خداوند عمل این افراد رو بی نخواهد گذاشت یا در این دنیا گوشمالی مختصری میده و میماند برای آخرت حساب کلی یا کلن در آخرت به حساب اینها خواهد رسید سمالله شهیدن علاما یفعلون شهیدن یعنی که معافدون خدا شاهد اینا رو چه کارشون بکنه عنوان کرد بعد میگه وقتی که به اینجا برسه یقولون مرتب میگن به مزاره دیگه یقولون هم متا حازن وعدو میگن این وعده که قرار ما ادب بشیم عذاب بر ما نازل بشه ها این کهیه در واقع به نوعی استعجال عجله نشون میدن نسبت به وعده عذاب این استعجالشون در واقع به شکلی به نوعی تکذیب و استبعاده ها میگه با که؟ متا هاز الوعدو متا متعلق با عامل مقدر خبر مقدم هازا مبتده های محفظ الوعدو عطف بیانش مطا حازل ور این کنتم صادقین هم گفتن واسه خاطر که تحریک کنن یعنی اگر شما راست میگید ها؟ این همون چیزیه که ما عرض کردیم که بنابر سبید تکیزیب و استبعاد این مطا حازل رو دارمه گفتن این کنتم صادقین کنتم صادقین فعل شرطشه جزای شرطش به قرینه چی شده حض شده یعنی اگر شما راست میگید پس این وعده ی عذاب که سلامه <تصفيق> یعنی در واقع این کنتم صادقین به جهت بگو تحریک بوده یعنی اون تکزیل اون استبعادشون رو خیلی خیلی بگو شدیدتر نشون میداد <تصفيق> امکنتم صادقی نه، و متا حاضل و اگه شما راست میگید واقعا نمیخواید سر ما کلاه بذارید خب بگید وقتش که در واقع این امکنتم صادقی نشون و این یقورون فیل مزاره نشون میده سوالشون این عجله کردنشون در واقع از یه تکزیب و یه استبعاد یعنی بعید شمردن و احتمال ندادن سر میزده سوالشون سوال واقعی بگید نیست قول میگه حالا شما جواب رو اینطور بگو بهشون یه قولون قولم. لا عمل کل نفسی زرن و لا نفر الا ما شاء الله بگو هیچی دست من نیست من نفع و خودم هم دست خودم نیست لا عمل کل نفسی متعلق به لا عمل کن ضرورا مفعولم به نکره دستی ها و نفع افاده امون. هیچ ولا نفعم من اصلا مالک نفع و زرر به خودم هم بگید نیستم مقول قول لا عمده کن حالا زر میتونه مثل فقر مرز نرد مثل بگو ثروت صحت و سلامتی ها هیچی چی این نکرن دیگه در سیاه و نفر خادمون مسادیقش صحت و مرز میتونه باشه فقر و قناه میتونه باشه هیچی از اینا دست من نیست الا ماشاءالله الا ما شاء الله این الا ما شاء الله دوشور یعنی در واقع این شکل میشه استثناء دیگه استثناء اگه استثناء متصل بگیریم یعنی هیچ نفع و ضرری رو من مالکش نیستم نسبت به خودم مگر آنچرا که خدا بگید بخواهد خدا بخواهد چی خدا بخواهد که من مالکش بگید بشم یعنی الا ما الله ان املکم. من نفع و ذرا و زرن میشن مستثنا مستثنا چون چون نکره در سیاق نفیان فاده عموم میکنن هیچ نفع و ضرری رو من مالک نیستم جز آنچه این ما استثناء میشه جز آنچه که خدا بخواد من مالکش بشم و قادر بر بشم از نفع و ضرر یعنی الا ماشاء الله ان املکه او من نفع ان او خب. یه جوره دیگه هم میشه باز رو ترکیب کرد استثناء متصل بگیم چی بگیم اینطوری بوده لا عمل کل نفسی ضر ولا نفعا فی کل وقت در همه اوقات فی کل وقت. الا وقت ما الله یعنی الا وقت مشیئته الا وقت تا بگید ما الله وقت تا مشیعته ما بشه مای ما مستریگه یعنی هیچ وقت من هیچی نداشتم من هیچ زمانی هیچی نیستم مگر اون وقتی که خدا بگید خواستش بشه همه چی دسته موسیقی. میشه اون موقع استثنائی مفرق یک استثنائی متصل نیست میشه استثار مفرد، مستثنانه میشه وقت محضوب. یعنی لا عمل کل نفسی، زرد و لا نفعن، فی کل وقتن، الا وقت ما شاءالله. خب، تمام شد. کی جواب داد؟ گفت دست من نیست اینی که شما دارید بگید. میخواید. اینی که شما تکذیب میکنید. من مالک نفع و زرر برا خودم هم بگو نیستم چه رسد به شما چه رسد به شما بعد میفرماید ولی یه قایده کلی هست این لکل استیناف بیانی لکل امتن اجلون لکل امتن خبرم اقردم اجلون مبتلای محق ولی هر امتی سرانجامی دارد یعنی هر امتی که تکذیب کرد سرانجامی دارد لکل امت نجل ازا جا ببین ازا میگه ها ازا مستقبل محققون وقوعه ازا جا اجلهم هم فلا یست اخرون ساعتن و لا یسترخنون لا لا یسترخدمون سنت اتباق دارم به خاطر همین هم قشن شد میگه اما اگر وقتش برسه وقتش هر امتی سر انجام می داره. این تو نیستش که یک امتی بگید کاری بکنن و وعده الهی نیاید قطعی است و زود داره اما سخت و سوز نداره ازا جا عجل هم ایفا خواهی نتیجه است بنابراین لا یستاخرون ساعتن ولا یستقدمونه یعنی ولا یستقدمون ساعتن ساعت اینجا ببینه آنه دهزه است این لا یستاخرون ساعتن ولا یستقدمون ساعتن یعنی دقیقه سر وقتشه عقب و جلو نداره. یعنی منظوری نیستش که عقب جلو میشه. یعنی منظور نیست که وقتی عجل وقتش برسه بگو دقیق یعنی عجل حتمیه. و اون هم ما نمیدونیم که چون اختیار دست ما بگید نیست ل کلمت عجل. زیرا هر امتی سرانجامی دارد این منظور امت که اینجا میگه یعنی امتها بگو اگر نافرمانی کردن عذاب قطعیه قطعیه اما این که کهش ما نیست وقتش که شود حکمت الهی اختصار کند یک آن این ورون ور, ور؟ نخواهد ازا جا هم لا هم لایست اخرون فلایست ساعتا ساعتن ساعتن زربه. ولی از ترقیم چون؟ بله؟ مفغولون فیر بر. زر پس منظور از این که یه لحظه این ورون ورد نمیشه یعنی چی؟ نمیشه. یعنی سر آنشه یعنی اصلا منظور نیست که جلو نمیاد عقب نمیاد آه منظور این؟ نیست اصلا عقبی نیست. یعنی یه آن دارد نه زودتر از اون میشه نبگی دیرتر از اون میشه اما اون لحظه که اون لحظه رو ما نمیدونیم ولی میدونیم که لکل عمت عجل قلوم حالا پس جواب داد دیگه نه اونا گفتن که این وعده عذاب کهه اگه راست میگی پس بگو آ؟ چی جواب داد؟ گفتش که من اختیار دست من نیست هرچی خدا بخواد همونه ولی سنت الهی بر اینه که امتی که برخلاف سنت الهی رفتار کند به عذاب گرفتار بشه و این عذاب سر وقت میاد هیچ وقت هم از وقتش تقطی نمی نمیشه زودتر بشه نمیشه دیرستر یعنی سر وقت بشه قل بروه حالا قل اره ایتم این اتاکم ازابوهو بیاتن او نهارن مازای از تاجلومن المجرمون از سم ما وقع آمنتون به آ علاّقانه، علاّقانه، وقّد کنتون بهی میگه پس امر یاقینیه اینکه عذاب میرسه. آرا عیتوم. این اتّاقكم عذابهو بیاتن او نهارن. بیاتن ضرف، نهارن جایست بیاتن یعنی لیدا نهارن یعنی نهارن روز عطا کم یعنی عطای کم منسوب به نظر قافزه عذاب او یعنی عذاب الهی این ان عطا کوم عذاب او بیاتن او نهارن فعل شرطی اگر عذاب الهی شب هنگام یا بگو روز هنگام به سراغ شما بیاد چون؟ پس قطعیه اما روز میاد شب میاد کی میاد نمیدونیم اما اگر عذاب الهی آمد سراغ شما ها اره ایتون مازا از تعجل و منحل مجلمون اینجا چیز شده ها به اصلاح سنت التفات نگفته که مازا تستعجلون منه آه؟ گفته مازا یستعجلون من ها المجرمون ارعای تو که شما ها از چی فرار میکنید به چی چیزی عجله دارید آه؟ حالا که عذاب الهی قرار برسه عجله چی رو دارید میکنید ها عجله و عذاب میکنید چه چیزی رو دارید عجله میکنید چی میخواید چیز خوبی در انتظارتون نه؟ نشود این ارعایتوم یعنی اخبرونی خبر بدید بگید این مازایی از تعجل و منحول مجرمون در واقع مفعول ارعایتومه بگید چی رو دنبالش هستید مجرمین دنبال چی هستن یعنی شما دنبال چی هستید اون این اتاکم عذابوهو بیاتن او نهارن جمله بگید معترض است جواب اون به قرینه عره ایتون حضب شده یعنی این بوده این اتاکم عذابوهو بیاتن او را نهارن افر ایتون مازای از تجرمهن هر مجرمون نشود یا شد یعنی ارعایتون مفعولش که مازا یستعجل و منحل مجرمون دلوشو گفته بگید چه چیزی رو مجرمین ازش شتاب دارن میکنن چی میخوان مازا یستعجل و منحل مجرمون منحل یعنی منم الله چه چیزی رو دارن طلب عجلش رو میکنن مسلمین از خدا چی از خدا میخوان اینقدر عجله میکنن بده بده بده چی میخوان چیز خوبیه خوبه میشه. مازا مفعولی از ترجلست یعنی اینطوری میشه اره ایتوم اره ایتوم ماذا تستعجلون من الله آخه بگید ببینید چی میخواهید از خدا چی رو اینقدر جلشو میکنید طالبید از خدا شد یا نشد ایتون ماذا تستعجلون من الله خب ارعایتون فعیتون مازا یعنی عیت شیعه تسته جرون من الله این فقط ماز رو برداشته جش چی بذاشته؟ ها؟ هم اسم ظاهر آورده من تبدیل شد و منبال این که اینا منظره مجرم بوده اون مجرم دنبالش چیه؟ این بعد این اتاکم وقت آمده بروش شد؟ یعنی جمعه معترضه شد حالا این اتاکم عذاب و او نهارن بیاتن او نهارن جواب شرطش چی میشه؟ به قرینه ای مازاد است از ترجلون چی شده؟ هست شده یعنی اینطوری بوده این اتاکم عذاب و او نهار ف یعن اه جا چه شی میشد اگر عذاب خدا بگو شبانگاه یا بگو روز سراغ شما بیاد شما دنبال چی چی هستید چی میخواید چیز خوبيی که دنبالشی؟ خب مشخص شد نه ماز مازای از تعجل و من هو مجرمان ار آیتوم ان اتاق عذاب و لیدن و نهارن، مازای از تعجل من هو مجرمان خب بعد میفرماید عص من همزه میدونید که حمزه استفان صدارت چی داره؟ تامه داره. حتی به حرف ما، چی میشه؟ مقدم میشه. از اذا ما وقعا آمنتون به اسما یعنی سمعا اذا گفته‌ها اذا چیه؟ بگید. امره یقینیه یعنی قطعا وقتی عذاب اونی که دارید اجله بهش میکنید اعضاب ما وقعه ما بعد از عذاب زایده است وقعه چیه؟ وقعه که، کیه؟ اصومه از اعضاب وقعه اون ما تسته جلونه عذاب اگر اون عذاب هنگامی که واقع بشه آمنتون به؟ اونجا ایمان میارید به خدا ها؟ <تصفيق> <تصفيق> یعنی اون وقت وقت ایمان آوردنه <تصفيق> یعنی به طور یقین این هست که وقتی عذاب رسید دیگه وقت ایمان آوردن نیست آیا وقتی برسه ایمان میارید اون موقع دست تسلیم بلند میکنید آمنتون به بهی بکی به نخوره به خدا مند. خب تا اینجا ای مطلب مشخص شد گفتش که آخو اونها منباب استهزا و مسخره و منباب تکذیب و استبعاد میگفتن و کو کهیه خدا میگه سر چی دارید انقدر بگید عجله میکنی چیز خوبیه دنبالشی بعد گفته هنگامی که برسه میخواید ایمان بیارید آیا وقتی رسید ایمان میارید اینجا این اعلانه یه دونه قیله افتاده مقول قوله مقوله چیه؟ بگید قوله یعنی قیله اعلانه میگیم چطور؟ که میگه وقتی که اتفاق افتاد شما ایمان بیارید می فرماید قیل اعلا آنه این اعلا آنه یه دونه فعل حضب شده چی بوده؟ یعنی قیل لهم یا قیل لکم که لکم بهتره قیل لکم اعلا تومنون یا اعلا آنه آمنتون اعلا آنه متعلقه به بگید یه تومنونه و آمنتومیه که از قرینه بگو فهمیده میشه دیگه آمنتوم به میگه وقتی اتفاق افتاد عذاب آمد شما میگید بله مثل فرعون که وقتی داشت قرق میشد گفت آمنتوم به ما آمنت بهی بنو اسرائیل. میگه اون موقع ارزش نداره دیلالکم اون موقع به گفته میشه اعلانه آمنتوم بهی اعلانه تومنونه بهی الان ایمان آوردید یعنی به باب توبیخ همزش میشه همزه چی؟ الانه توبیخ الانه هم مقدم شده یعنی این زمان فقط این زمان یعنی قبل از این تکذیب میکردید قبول نداشتید آیا الان ایمان آوردید این واقع باقایی است. حال است از برای اون تو تومنون آمنتومی که الان بهش متعلقه وقد کنتم به تاستعجلون آ و حالا که قبلش کار میکردید بفهم و حالا که قبلش بگید عجله میکردید به آن ولی به اون عذاب عجله میکردید اینجا منظور از تستعجلون یعنی توکذبون چون با با متعدی شده یعنی در واقع تزمینه یعنی توکذبونه بهی مستعجلین در حالی که قبلش تکذیب میکردی با عجله و شتاب خیه هم عجله میکردی بهی هم مقدم شده برای قرص لفظی یعنی قرص معنوی نداری پس این طور میشه ببینید عبارت این میشه دیده لفظ دید در تبدیل بهتون گفته خواهد شد ا الان یعنی آیا در این زمان تومنون یا آمنتون من رو نمی کنم ماضی و مزاره هر دو تبدیلیتون جاده تومنون هم دیدی یعنی به خدا. آیا الان ایمان آوردید به خدا وقتی که عذاب واقع شد میگه اینا ایمان میارن آمنتم به اون موقع بهتون گفته میشه آیا شما بگو الان ایمان آوردی وقت خونت تو کذبون و بعد تو کذبون بیهی مستجری و حالا که قبلش بگو با شتاب عجله میکردی زیر همه چی میزدی الان ایمان آبودی چی شد که الان ایمان آبودی ها چی شد ایمان آبود ها اینطور میگه ها کنید قبلش میگه بهشون بگو به ما بگید اگه عذاب الهی بیاد یا شب یا روز الان شما دنبال چی هستید اگر عذاب اومد شما دنبال چی هستید چیز خوبی گیریتون میاد بعد میگه آیا اگر عذاب الهی رسید و واقع شد شما میخواید ایمان بیارید اون موقع ایمان بیارید چون گفته خواهد شد میگیم مگه اون موقع ایمان چیزی داریم میگه اون موقع بهتون گفته میشه کی چی بگو الان ایمان آوردی در صورتی که چند دقیقه قبل داشتید بگو تکذیب می‌کردید و عجله هم داشتید در اینکه عذاب براتون برسه. این مَقِیلَ عطف به جای اون قِیلَ محذوفه که من نوشتم قیل لکل جمله به جمله اعرب شده. صُم مَقِیلَ للذین لذین ظلمو کیا ها یعنی همین آدم‌ها که ظلمی به خودشون کردن هیچ گونه از موارد رو نپذیرفتن ثم غیل للذین ظلمو ذوقو یعنی لذینه متعلق به قیر است ظلمو سله ذوقوا عذاب خلد بچشید عذاب ابدی رو زوغ و عذاب الخود حل توجزونه الا به ما کنتم تک سبون استیناف بیانی حل به معنی نفیه زیرا ما توجزونه زیرا جزا داده نمیشید الا به ما کنتم تک سبون مگر به همون چیزی که خود دوگه ما داق و درفش براتون نیوردیم این داق و درفش اعمال عمال خودتون. ال توج زون الا بما. بما به ما به ما متعلق به توی زون است الا به ما کونتوم تکسبون یعنی به ما کونتوم تکسبونم به اون چیزی که خودتون کسب میکنید اون مطلبی که الان داریم میخونیم ها نشون میده که عذابه دو تاس چون نگاکنید قل قل ان عتاكم عذابو بیاتن او حالا این عذاب عذاب خلد نیست این عذاب عذاب دنیاست عذاب دنیایی که بیاد که شما هی میگفتید که که, که که که ها سر چیش داشتید دعوا کردید وقتی برسه ایمان میارید ایمان اون موقع چه ارزشی چی بگو داره در صورتی که قبلش داشتید در حالی که تکزیب میکرد بعد میگه گفته میشه به این آدم ها که عذاب جاودانه رو حالا بچشید عذاب الخود عذاب آخرتی رو الخود یعنی جاودانه یعنی عذاب الاخره الخود یعنی الاخره این حال استیناف بیانیه هل به معنای نفیه یعنی لا تو ما میگیم عذاب رو بچشید مطمئن باشید که این عذاب بگو ها عذاب عمال خودتونه چیزی مازاده بر اعمالتون ما به شما ندادهیم هیچی اضافه تر از اعمالتون بهتون نرسید بله نه آخرتی آخرتی تو میگه زوق و عذاب خود بچشیده شای پس اون میشه ما عذاب اولیه عذابه از, از این آیه یه چیزهایی متوجه میشیم اونم اینه که خداوند امتی رو که بر اساس اختزای سنت الهی علیکت نکنه این امت رو ادب میکنه و این امت اگر در هنگام ادب و عذاب الهی ایمان بیارن ایمانشون ارزشی. نداره و اون موقع دیگه طریقه ایمان آوردن زمان ایمان گذشته چون بهشون گفته میشه اعلانه آمنتون بهی اعلانه تؤمنون بهی وقت کنتم بهی تستجلون وقت کنتم بهی تو کذبون. الان دارید ایمان میارید قبلش داشتید تکذیب میکردید بعد هم ثم سمقید سپس بهشون گفته میشه بفرمایید به جهنم برید و این جهنم هم سزای اعمال خود شماست هل توی زونه الا به ما کنتم تکسبون کنتم تکسبون ماضی استمرانی تو تور مدت عمرتون داشتید هیزان جمع کردید چیزی ما از بیرون برای شما تهیه بگید ندیدیم شد؟ آیاتش رو نگاه کنید اگر یک زمان بالا پایین بود مشکلی نیست سوال کنید من به هم دیگه چفتش میکنیم حالا ممکنه که یک مقدار نیاز به این داشته باشه که عطبها رو به هم متوجه بشید تا بفهمید مطلب چیست خب و یستم به اونه که و یستم به اونه که احب قنهوبه قل ای و ربی انهو لحقون و ما انتم به معجزین واقع و از سینافی هست. البته میتونه حت بشه به جای اون و یقود اون ولی بهتر که مطلب جدا گرفتش یستن به اونه که احقون هوه حقون خبر مقدم به فعل و مبتدا معخر یستم به اونه فیل و کاف مفعول به معنای یستخبرون یعنی تو سؤال میکنه یستفتون کاف مفعول این احقن‌هوا رو نهاد دو جور ترکیب کردم جمله رو. بعضی گفتم جملش محلم ممنوعه، مفعول دوم استم به اون است. مفعول دوم استم به اون است. بعضی گفتم فعل یاستم به اون است مفعولیه. سیوتی. و این آه قنوها صد مصد دو تا مفعول دو و سه هم دو کار به اونای یعنی یستع لمونا یستن به اونای یعنی یستع لمونا باور از تو می در این مورد که آه قنوها که این حق است پس آه قنوها یا به معنای بگو از است، استی و به اون یه اق میشه مفول دوم یا از است یعنی باور میتر یقین میترند ها سه مقبولی میشه و هقون ح میشه جای مقولول دو بام هر دو رو گفتن و دو باامی رو گفتم سیوتی بابام میکنه و مفول دو بام و سرم یعنی فعل و سه مفعولی میگیره از افعال قلوب یعنی مفهوم معنایی از طب چنین به معنای یست تعلمونه یعنی از تو طلب یقین میکنن نسبت به این احق هو این حقه میگه جواب قلبی ای و ربی ای یعنی نعم و ربی یعنی قسم به پروردگاره در جا جارو مجموع تالا با اخسمای مقدر این نهول حق اینم جواب قسمه بگو بله قسم میخورم که این حق است شد قسم میخورم هم. ای یعنی نه قبل از قسم میاد میگه سوال کردم بگو بله قسم میخورم حق است انه لحق کن و ما انتم به معجزین و ما انتم به معجزین و شما هم نمیتونید از دستش درید. شما هم نمیتونید بگو از زیر بار مسئولیتش فرار کنید هیچ اینطور نیستش که شما بتونید فرار کنید از عذاب خب پس فایمه گفتش که سوال میکنند این حقه عذاب میاد؟ میگه بگو صد درصد میاد و شما نمیتونید از دستش بگو فرار کنید به شما حتما خواهد رسید چطوریه که در خونتون خواهد خوابید. و از به اون که احقون هوا این سوالشون هم سوال بگو از بگو این کارها... یعنی سوالشون برای بگو فهم نیست حقه میگه بگو خدا حق جوری که از دستشم نمیتونید فرار کن خب حالا خداوند او شرایط رو کاملا بگید توصیف میکنه میگه ولو ان این انه انه با اسم خبرش تحویل به مستر میره فائل یه ثبته مقدره که فعل شرط آره تعویل به مستر میره فاعل یه ثبته مقدره یعنی لو ثبته انه چون بعد از لو فعل شرط دیگه لو ثبته انه لکل نفس زلامت ما فعل عرضه. لکل نفسن خبر مقدم ظلمت صفت نفس که به خودش ظلم کرده یعنی لکل نفسن ظالمتن یعنی هر کسی که کارنامه اش ردی باشه لو میگه لو یعنی هیچ چیزی نمیشه به فرض به فرض که کسی که کارنامه اش ردی داشته باشد مافل عرض آنچه روی زمین است یعنی همه ثروت عالم بگید ثروت مال او باشه مالی کی مال یه نفری که کارنامه ردی گرفته نفس زلمت میگه، ولو آنل کل نفس زلمت مافل عرضه، فل عرضه، یعنی استقرار فل عرضه ماست. اون ما اسم آن نست، خبر آن است اگر فرض کنیم، ثبت برای یه آقایی که کارنامه ردی دارد، تمام اون چیزیست که رو زمینه، همه آلم مالشت. لفتدت به لفتدت جواب افتادت بهی فدیه خواهد داد اون نفس ظالمه بهی بهی میخوره به مافل عرض همه اونچه که دارد رو بگو میده گرفتی چی شده نه یعنی اختی شرایط خراب شد عذاب رسید اوزا بگو اینطور شد که گفتیم اگر یه نفر مثل شما اون موقع فرزن حالا همون موقع هیچی ندارن هیچی نیست ولی اگر یک نفر تمام زمین رو هم داشته باشد تمام ثروت هم مالو باشه این سروتت رو میده که از شغل این عذابه چیه؟ نه نه میده به این که عذاب الهی رو از خودش دفع کنه دیگه خودشو آزاد کنه بیدی. میگه شما میایید فدیه بله به مافل عرض افتدت به فدیه میدهد این نفس به آنچه دارد یعنی آنچه که مافل عرزه. میگه ببینید انقدر شرایط سخت میشه ها و اینقدر شما گرفتار میشید که اگر فرض بگیریم همه آلم رو هم در اختیار شما گذاشتن شده مال شما شما اونجا آزرید همه آلم رو بدید تا بگید خودتون رو از غیر آزاد کنید فدیه یعنی این که اسیر آزاد شدید شما نفس ظالم در اختیار ما هستید اگر فرضا تمام آلم هم تو مشتتون بودون رو به ما بگید نشود. یعنی میخواد شرایط و خطورت رو بگه ها و الا کسی اونجا چیزی نداره کسی هم فدیه قبول نمیکنه میگه اگر اینقدر سخت میشه که اگر تمام انوال عالم دست شما بود ها همه انوال و خزائنش شما اونها رو میدادید تا بتونید خودتون رو بگید از دست ما خارج کنید فدا و افتدا به معنای فدیه داد لفتدد نشد یا شد میگه اینقدر سخته ها زیرا اینطوریه که اگر تمام دنیا مال نفس ظالم باشتون لحظه حاضر همه رو بگید بده تا خودش رو آزاد کنید. و اثر رو ندامه و اثر رو اندامته ان این و اثر رو چیه بابش همون نفس ظالمه آه؟ همون نفس ظالمه اعتبار معنا شده اثر رو. لفتدت و اثر رد روز و اثر رد ولی و اثر رو اثر رو ان ندامه ان ندامه یعنی تمام ندامت ندامت یعنی چی پشیمانی هر گونه ندامت رو اظهار میکنه اثر دوتا تا معنا داره یکی اثر رو یعنی پنهان کرد ها اثر رو یعنی چی؟ پنهان کرد یکی اثر رو یعنی اظهار کرد بعضا گفتن و اثر بودن ندامت لما را اول عذاب یعنی چی یعنی پنهان میکنن پشیمانیشون رو موقعی که عذاب ببینن ببینن یعنی از این چهت که خیلی دیگه شماتت بگید نشن بعدان که آشکار میکنن تو سر و کلی خودشون میزنن چه غلطی کردیم موقعی که عذاب رو گرفتی چی شد یا نه اگر ندامت رو پنهان کنن برای چی پنهانش میکنن برای اینکه توبیخ بیشتر نشن مثل کسی که رد شده رد شدنش رو یواشکی قایم میکنه واسه خواهی که هرگی بشنبه میگه خاک تو سره یا نه اظهار ندامت میکنن یعنی دیگه اختیار از دستشون در رفته اونجا تو سر جله خودشون میزنن که چه غلطی کردیم نفهمیدیم و خودمون رو چه آتشی برای خودمون آماده کرد و اثر رو ندامند این لمارعولعذاب رعولعذابه فعل و فاعل و مفعولعذاب یعنی عذاب الهی عذاب آخرتی وقتی عذاب رو میبینن اثر رو ندامند جواب به قرینه اثر رو ندامه هست شد لما اضافه میشه به فعل شد منصوب به جزاش ببینید اثر رو ندامه و قضیه بینهم قضی بین هم بلغست و قضیه بینه هم و قضا میشه حکم تمام میشه عذاب حاکم میشه بینهم هم بین این ها بلغست آه. بلغست یعنی به قصد الهی به ادالت الهی یعنی مور از ماست بگیر میکشم بین هم یعنی بین ظالمی بلغست متعلق است به قضیه یعنی با تمام ادالت حکم کرده می شود بین اینها بین اینها حکم میشه با تمام ادالت یک ذره و هملا یزلمون حاله و حالان که هیچ زرسروزنی هم بهشون زر نمیشه چه شششون که به عذاب میفته چی میکنن یا از حال پشمانی میکنن یا پشیمانی رو پنهان میکنن و حکم بین اینها به ادالت میشه و هملا یزلمون و وقتی عذاب برسه اینا همه دنیا مگر اگر توی اختیارشون باشه بدن تا خودشون از عذاب رها کنه بعد میگه ولی اینا چی ندارن علا این نللله ما فسماوات و الارز علا این نوعدالله حقون ولکن اکثرهم لا بل. چیزی ندارن حواستون باشه ان لله لله مقدم شده مفید چیه هست مال خداست ما سماوات آن چه و هست آنچه در آسمان ها و زمین هاست یعنی کله هستی مال خداست چیزی ندارن گفتیم اگر عالم تو دستشون بود میدادن تا خودشون رو رها کنن هیچچی ندارن انتمل فقراء الله علا باز با alam عوض باشه ان وعد الله حقن وعد الهی که گفته عذاب هست حقه مسخره بگید نگیرید وعد الله اسم نه بخدا میگه بچه‌ها تو اگر وعد الهی حق است چرا بعضی متوجه نیستن میگه ولاکن اکثرهم لا يعلمون نه ولی اکثرشون باور نداره باور نداشتن اونها دلیل بر بگیر عذاب نبودن از طرف خدا نیست صورت مسئله رو تو ذهنشون پاک کردن وی لا عذاب سر جای خودش ولکن اکثرهم لا یعلمون یعنی لا یعلمون انهو حق کن انه وعد الله حق باور ندارن که وعده خدا حق ولی چه باور بکنن چه نکنن مطلب سر جای خودشه هو یهی و یومید زیرا خداوند حالا یهی زنده میکنن هرکیه که زنده میکنه مفهول افتاده و یومید و میمیرانن. هر کی را میمیران احیاب و اماته به دسته بگید خداست زنده بودنتون دست خودتون نبود مردنتون هم دست خودتون نیست و الیه ترجعون الیه مقدم شده هم سجود درست کردن حصر رو و فقط به سوی خداست بره یعنی چه بخواهید چه نخواهید گذر پوست به دباخونه میافته این خداست که شما رو زنده کرد هدایت کرد تکلیف داد این خداست که شما را می میراند و این خداست که در معاد شما را حاضر می کند چه بخواهید چه نخواهید با این کار شما چیزی حل حوه یوهی و یمیت و الیه ترچان این هو مقدم شده مفید چیه؟ حسره بهش میگن, میگن فایل معنوی احیاب و اماته و ارجاع بگید دست خداست هیچی دست شما نیست این سنت خداست که بشر میاد هدایت میشه میپذیره یا نمیپذیره میمیرد و حساب و کتاب بگردنه و علیه ترجمان تمام شد پس بنابراین امر معاد امری بود که خداوند در این آیات با مجرمین به بحث نشست و پیامبر خودش رو گفتش که شما چکار کنید؟ با اینها مباحثه کن و بگو آخرش که شرایط شرایط سختی است اگر جوری بشه که الان جلوی چش شما معاد بیاد فرض بگیریم شما همه عالم هم تو مشلط باشه حاضری عالم رو بدی. تا خودت رو یک آن از عذاب بگو رها کن پشیمانی خواهید داشت اما این پشیمانی انگام رویت عذابه و هیچ فایده ای بگو ندارد چون حکم به ادالت میشه و ظلمی هم در کار نیست گرچه در قیامت شما هیچ ندارید همونطور که در دنیا هیچ ندارید هرچه هست مال خداست وعده خدا هم حقه باور کنید و این وعده الهی آمدنی است گرچه خیلی‌ها قبول نداره چون سنت خدا ورینه که یا و اماته رو ارجاء داشته باشه یا ایه الناس خطاب به مردمه یا ایه الناس ببینید خطاب به ها یا ایه هنناس قد جاعت کن موعزتون منرب بکن جواب نداس آمده به سوی شما موعزتون نکره است دلانه بعد تعظیم موعظه عظیم منرب بکن صفت موعظه است این پنده و شفا اون شفاء یعنی و شافن ها نزل من نزله من ما هو شفاء و رحمت لل و, و شفاء اما این شفاء مال لماف صدور و شفاء لما بگید فسدور یعنی فی صدور کم شفا هست برای آن چی که تو دل شماست امراضه بگید روحی تو امراض اعتقادیتون موعظام شفا ملومه؟ شفا لما فستودور لما متعلقه به شفا اگه به معنای شافه نیماشه که البته اون لامش لام تقویت میشه ولی به نظر میاد که شفاون این لما جارو مجرور بعد از اون صفتشه مثل ونون از زرومن القرآنه ما هو و شفاون و رحمتون للمومن که صفته اینجا صفت و هدن هدن عطبست موعزه شفا هدایت و رحمت و رحمتون للم مؤمنین، دلیل نگاه کنید دو تا مطلب هست. میگه که موعظه آمده از طرف پروردگار. یا ایها ناسا مردم، موعظه از طرف پروردگاره. موعظه مال هم است. شفا داروست. لما فسدود، اینم هم مال هم است. شو؟ اگر دارو رو به کار بستند موعزه رو گوش کردن منجر به هدایت و رحمت میشه اما هدایت و رحمت مال کیه؟ مال مومنی متوجه مراحلش رو موعزه است نقشه راه از طرف بروردگاه نقشه زندگی موعزه و برای همه داره برای است نقشه راه برای همه یه نقشه راه بشری زندگی کنید خداوند که خالق بشری یه کاتالوک هم داده یه نقشه راه هم داده که بر شما زندگی کنید منرب بکن یعنی سازنده شما بگید نقشه راه رو این طرز به قول معروف استعمال رو هم طرز استفاده رم داده بعد شفا اون لما این نقشه ها باعث میشه شما استفاده بهینه کنید باعث میشه که این درست استفاده بشه شفا اون لما فسدود هر چه درسینه ها هست شفا دهنده امراض بشر رو شفا حالا اگر موعظه و شفا رو به کار بستی نتیجهش چی میشه؟ بگی هدایت میشه میشه تو مسیر تو مسیر بودی نتیجهش چیه؟ لطف و رحمت الهی اما تو مسیر بودن و لطف و رحمت داشتن مال مؤمنینه مال اوناییه که موعظه رو و شفا رو بگید به کار می‌بندن. و موعظه و شفا بگو هست اما به شرط اینکه بگو به کار گرفته بشه ولی اگر موعظه بهش عمل نشه شفا هم بگید به کار بسته نشه هیچ موقع منجر به هدایت و رحمت بگو نخواهد پس هدایت و رحمت نتیجه موعظه و شفاه و این هم ماله بگو که به کار نشودیه شد چی گفتی؟ چهار مرحله رو پشت سر هم داره. دو تاش تو مرحله تئوریه آ، برای همه است. بعد اگر به کار بستیم، حاصلش دو تای دیگر است که تو مرحله عمله برای مؤمنین. یا یهن ناس قد جاکم موعزتون جاعت کم من مرب بکن و شفا لما في و لما السدور و هده و رحمه لیل مومنی شد زیباست قل به الله و به رحمتهی و به زالکه و, و خیرم مما جمعون یه عبارتی رو داشته باشین مثل ورب و کپ که این ورب کف و چی بوده؟ بعضی میگن ف آائده است. ربک مخبول کبد بعضی ها میگن نه این فا از جواب امایه بگو مقدره برای تاکیده یعنی اما ربکه فکبر و رجز فهجون دارد مثل اما به ربک ربکه فهدسه که اونجا اما زف شد اینجا حضب شد این هم میگن اینطور بوده اما قل قل اما به فضل الله و اما داخل پرندس اما به فضل الله و رحمتهی فلیفره بود. اما به فضل الله و به رحمتهی بگید فلیفرهو چی میشه ترجمش بگو تأکید میکنیم اما به فضل و به رحمت الهی خوشنود باشیم فلیفرهو فلیفرهو به چی بگید به فضل الله و به رحمت نشد یا شد؟ شد شد این فضل الله به فضل الله و به رحمته متعلقه به یه فلیف بگید مقدره بله یعنی اینطوریو میده اما یه اما در اما به فضل الله که هست و رحمتهی فن یفت این فن یفت همه به قدیل بعد دوباره بوده و اما بزالک زالک فن یفت جمعه دوم تاکیدشه و اما به زالک زالک به چی بر به فضل رو اسم اشاره قایی برمیگرده به تسنیه دو قرآن داریم لا بکرون و لا فارزون اوانون بین زالک زالک برمید به فضل الله و به رحمته و به زالک فلیفره و زالک فل یعنی در واقع جمله تکرار یه جمله دو بار تکرار شده مثل انما علی اسره یسرا انما علی اسره یسرا درست شد بله دیگه تکرار بله تاکید دو بار تکرار اون موقع فای سبذالکه میشه فای چی میشه فای آتفه. دو دوتا می مثل چه چیزی بسنین کلا یادتونه کلا سوفا سمه کلا سمه تالمون یعنی دو دو جمله تحکید شده یا نه؟ تحکید فقط با حرف به چیه بگی؟ سمه است که آدم حرفت بهش پاره مثل اولا لکه فاولا سمه اولا فاولا هم با پاس هم با سمه چار بار اولا تکرار شد درست شد؟ اینجا فقط اینجا فقط این کیکشه که ما داریم این عبارت ما درست این جمله اوله، این جمله بگی دومه این ما آمده فقط اما ها شده حضب شده یعنی اینجا بوده اما به فضل الله و رحمتهی فریاف بود این حضب شد. این اما هم بگی هست شده این فا هست این اما هست شده بزار کفر یفتره سر جایه خودش دو تون جمله است به هم خب مخبوم این جمله چیه؟ به فضل و رحمت الهی بگی خوشمود باشید گفت خدا موعظه فرستاده شفا فرستاده هدایت و رحمت فرستاده آه؟ بعد حالا میگه به فضل و رحمت الهی بگو خوش نید فضلش میشه همون موعزه و شفا رحمتش هم میشه هدایت و رحمتی که بعد باق سمه و فار. با باق نمیشه با مثل اولا لکف اولا سمه اولا لکف اولا هم با فاس هم با سم. هم بدون عطف میاد مثل این نمحل عصره یسرا این نمحل یسرا هم با فا و میاد که تختازانی میگه اگه با فا و میاد بیشتره یعنی جمله دوم تاکیدش نسبت به جمله اول بیشتره مثل که میگم بخور بخور این دومی تاکید اولیه اما با تون صدای من تحکیدش چی شد بیشتر شد این هم اینطوریه. اما به فضل الله و لحمتیهی فبزالکه فلیفره بود. پس این در واقع چند تا جمله است؟ ما چی رو تو اینجا زاید کردیم؟ ای چی؟ فای فبزالکه چی رو به چی کرده؟ فای فبزالکه دو تا جمله با دو تا جمله ایکی، یکیش محکده یکیش محکده به هم زالک به چی برمیکرده؟ به فضل الهی و به رحمتش این به فضل الله و به رحمتهی متعلقه به چیه؟ فلیف که به غرینه دومی چی شده؟ فضل یعنی عبارت اینطوریه. قول اما به فضل الله و به رحمتهی فلیف رهو ف اما به زالکه فلیف و اما به ظال کفل میگه بچسبید به فضل و رحمت الهی چرا؟ چرا بچسبید به فضل و رحمت الهی؟ چون هو هوبخ خیرم به مای اجماع ها؟ چون این فضل و رحمت الهی خیلی خیلی بالاتر از این چیزایی که شما دارید دنبالش میدوید اینهایی که شما میدوید ها؟ یه ذره ممکنه زندگی دنیاتون رو آبونونی درست کنه اما فضل و رحمت الهی همه این هاست اون باشه اینا هم یه سدجار خودش هست و ایلا او نباشد اینا هیچ کنون بدهد خوبه خوبه به چی میخونه؟ فضل و رحمت الهی خیر و مما یجمعون یعنی مما یجمعون نشد یا شد پس بچسبید به فضل و رحمت خدا خب بذاری بمونه چون این عرائتوم بازی بحثی دارن یه عرائتوم گفتم اینو نمیخوام بگم الان یه عرائتوم امروز گفتم یه عرائتوم رو نگه داشتم که انشالله جلسه بعد بگم بتونم با این جمع جورش